و به دنبال بخت و اقبال خودش بره بالاخره شاه مجبور شد که این اجازه رو بهش بده و پسر آزم سفر شد بعد از چند روز سفر به خونه قولی رسید و تصمیم گرفت بره و مستخدم قول بشه روز بعد وقتی که قول میخواست بره و برههاش رو به چرا ببره به پسر گفت که باید استابل رو تمیز کنه. بعد گفت بهش که بعد از اینکه اون کار رو انجام داد لازم نیست که امروز کار دیگه انجام بده و فقط به اتاقت برو و استراحت کن. برای من خیلی مهمه که کار رو دقیق و تمیز انجام بدی و البته اجازه نداری به اتاقهای دیگه هم بری. فقط تو اتاق خودت بمون و اگه به جاهای دیگه بری تو رو می‌خورم. شاهزاده در حالی که زیر لبش آواز میخوند با خودش گفت چه ارباب خوبی من که حالا خیلی وقت دارم تمیز کردن یه استبلم که کاری نداره ولی بد نیست که یه نگاهی به اتاقای دیگه بندازم حتما در اون اتاقا چیزی است که اون نمیخواد من ببینم خلاصه به اولین اتاق وارد شد در اون اتاق دیگی از سقف آویزون بود و آب در اون در حال جوشیدن بود اما زیرش آتیش روشن نبود پسر یه تیکه از موش رو درون دیگ انداخت اون تیکه مو فورا تبدیل به مس شد پسر با تعجب با خودش گفت عجب سوپیه. لابد اگه کسی اونو بخوره تمام گلوش تبدیل به مس میشه به اتاقهای بعدی رفت. اونجا هم دیگایی از سقف آویزون بود که قلقل می‌کردن ولی زیرشون آتیش روشن نبود. پسر برای اینکه این, این دیگ رو هم امتحان کنه، دوباره تکه ای از موش رو برداشت و داخل دیگ انداخت. تکه دوم در همون لحظه تبدیل به نقره شد. پسر با خودش گفت: "عجب مرجون با ارزشیه." چنین چیزی در قصر پدرم هم پیدا نمیشه. البته بستگی داره که هر چیز رو چطور نگاه کنیم. بعد به اتاق سوم رفت. در اون اتاقم درست مثل دو تا اتاق قبلی دیگی از سقف آویزون بود و میجوشید بدون اینکه زیرش آتیش روشن باشه. پسر این بارم تکی ای از موش رو کند و داخل دیگ انداخت. تکه مو سری تبدیل به طلا شد پسر با خودش فکر کرد که شنیده بودیم که بد و بدتر وجود داره ولی این خوب و خوبتره حالا که اینجا طلا بوده پس اتاق بعدی چه چیزیه که بهتر از طلاه را افتاد و به اتاق چهارم رفت در اون اتاق دیگی وجود نداشت ولی نیمکتی بود و کسی روش نشسته بود که به نظر می اومد دختر پادشاه باشه حال اون دخترک هر کی که بود اونقدر زیبا بود که شاهزاده در همه عمرش کسی به اون زیبایی ندیده بود کسی که روی نیمکت نشسته بود گفت آه تو اینجا چیکار کار میکنی؟ پسر گفت من دیروز خدمت کار اینجا شدم دختر گفت هیچ جایی بهتری پیدا نکردی که اومدی اینجا شاهزاده گفت تازه من فکر میکنم که ارباب خوبی پیدا کردم. اون برای امروز به من کار سختی نداده. فقط باید استبل رو تمیز کنم همین. دختر دوباره پرسید میدونم. ولی شما چطور این کار رو انجام میدید؟ آخه تمیز کردن اونجا که معمولی نیست. هر آشغالی که بیرون بندازی ده برابر اون دوباره در همونجا ظاهر میشه. البته من به تو میگم که باید چطوری اونجا رو تمیز کنی چنگک رو برعکس به دستت بگیر یعنی دسته اون رو بذار زمین و با اون همه جا رو تمیز کن مشکل حل میشه شاست گفت بسیار خوب همین کار رو میکنم و بعد تمام روز همونجا پیش دختر موند اونا به همین سرعت تصمیم گرفتن که با هم ازدواج کنن خلاصه اولین روز اقامت شاهزاده در اون را برای اون طولانی نگذشت. حدودای عصر بود که دختر پادشاه به شاهزاده گفت که بهتره بره و قبل از بریشتن قول استبل رو تمیز کنه. شاهزاده برای که ببینه دختر به اون راست گفته یا نه اول استبل رو با همون روش معمولی تمیز کرد. ولی بعد از مدت کمی متوجه شد که فایده نداره و باید همون کاری رو بکنه که دختر گفته بود. یعنی چنگک رو برگردون و شروع به کار کردن با دسته اون شد. به این ترتیب توی چشم هم زدن استبل تمیز تمیز شد. پسر بعد از تموم شدن کارش به اتاقی رفت که قول بهش داده بود. اون خیلی خوشحال و شادمان آواز میخوند و قدم میزد. مدتی بعد قول و هاش برگشتند. قول پرسید استبر رو تمیز کردی؟ پسر پادشاه جواب داد بله ارباب الان اونجا تمیز و مرتبه. قول گفت الان میرم تا خودم ببینم و به استبر رفت و اونجا همون جوری که پسر گفته بود تمیز و مرتب بود. قول گفت تو حتما با سرپیش خدمت صحبت کردی. خودت نمیتونستی بفهمی که چطور باید اونجارو تمیز کنی. شاهزاده خودش رو به نادونی زد و گفت سرپیش خدمت یعنی چی؟ من که کسی رو ندیدم. قول گفت خب به زودی اونو میبینی. روز دومم مثل روز قبل قول میخواست برهاش رو به چرا ببره. بنابراین به شاهزاده گفت که تاون برگرده باید اسبش رو که به کوهستان رفته برگردونه و بعد از اینکه این کار رو انجام داد میتونه بقیه روز رو استراحت کنه. قول گفت ببین چه ارباب خوبی داری فقط همونطوری که دیروز گفتم نباید به اتاقای دیگه بری وگرنه سرت رو میبرم و بعد بر رو برداشت و رفت شاهزاده با خودش گفت بله شما واقعا ارباب خوبی هستین ولی بهتره من اول پیش شاهزاده خانم برم بالاخره شاید اون بیشتر بخواد پیش من باشه تا پیش شما شاهزاده پیش دخترک رفت دخترک ازش پرسید که امروز باید چه کار انجام بدی پسر پادشاه گفت کار سختی نیست فقط باید به دنبال اسب ارباب به کوهستان برم دختر یا همون سرپیش خدمت پرسید خب چطور میخوای این کار کنی؟ پسر پادشاه گفت نشستن روی اسب و برگردوندنمون به خونه که کاری نداره من قبلا رو اسبای زیادی نشستم سرپیش خدمت گفت بله اما این کار اونچنون هم که تو فکر میکنی ساده نیست ولی من بهت میگم که باید چه کار کنی وقتی تو بهش نزدیک میشی؟ آتیش از سوراغهای بینیش زبانه میکشه و خیلی مراقب باشه افساری رو که به در آویزونه بردار و به پوزه اون ببند به این ترتیب این اسب چنان اهلی میشه که میتونی هر کاری بخوای باهاش انجام بدی شاهزاده این حرف رو شنید و کنار دخترک نشست اونا تمام روز با هم حرف میزدند اما حرف اصلیش این بود که آیا میشه با شادی و دلخوشی با هم ازدواج کنن و از دست غول در امون باشن یا نه؟ شاهزاده دیگه داشت از یاد میبرد که به دنبال اسب بره و اگه دختر به موقع یادش نمینداخت معلوم نبود که چه اتفاقی میفته خلاصه شاهزاده بلند شد و افسار رو برداشت و به سراغ اسب در کوهستان رفت و همون جوری که دختر گفته بود صاله های آتیش از دماغ اسب بیرون می زد. اما پسر جوون تو فرصتی مناسب افسار رو به پوزه اون انداخت به محض اینکه افسار به گردن اسب افتاد اون مثل یه بره آروم شد و دیگه برای آوردنش به استبل هیچ مشکلی نبود شاهزده بعد از اینکه اسب رو به استبل آورد به اتاق خودش رفت و شروع به آواز خوندن کرد. قول حدودای اسب به خونه اومد و پرسید: "آیا اسب را از کوهستان آوردی؟" شاهزاده گفت: "ارباب، من این کار رو انجام دادم. اسب خوبی دارید، دوست داشتم کمی سوارش بشم. اما اون رو تو استبل بردمش." قول گفت: "من میرم ببینم." بعد به اسرب رفت و دید که اسب اونجا بود. اور برگشت و گفت تو حتما سرپیش خدمت رو دیدی و باهاش صحبت کردی وگرنه خودت نمیتونستی که باید چیکار کنی شاهزاده دوباره خودش رو به نفهمی زد و گفت شما دیروزم درباره این سرپیش خدمت حرف زدید پس چرا اونو به من نشون نمیدید من خیلی دوست دارم که اونو ببینم قول گفت به زودی اونو میبینی. صبح روز سه قول به راه افتاد تا به جنگل بره. اون به شاهزاده گفت که امروز باید به زیر زمین بری و تمام اسباب و وسایل منو بیرون بیاری. بعد از اینکه این کار را انجام دادی، میتونی به اتاقت بری و استراحت کنی. ببین چه ارباب خوبی داری و بعد رفت. شاهزاده با خودش فکر کرد بله، ارباب خوبی هستی. ولی من اول به سراغ شاهزاده خانم میرم. شاید بتونم قلب اونو رو تصاحب کنم. تو میگی که اون پیش خدمت توه. ولی اون به من کمک میکنه. برای کار امروزم هم ازش کمک میگیرم. بعد پیش دختر رفت. دختر ازش پرسید که امروز قول بهش چه کاری داده و اون گفت که باید به زیر زمین برو تمام وسایل قول رو بیاره. سر پیش خدمت گفت چطوری میخوای این کار انجام بدی؟ پسر گفت تو باید به من بگی چه کار کنم من که تا حالا به زیر زمین نرفتم و نمیدونم باید چه کار کنم. سر پیش خدمت گفت من به تو میگم تو باید به لبه کوه بری در اونجا یه چوماغه اون رو بردار و به سنگا بزن. بعد کسی که شبیه آتیش هست بیرون میاد و به تو میگه که چه چیزهایی میخوای ببری؟ تو بهش بگو که هرچی بیشتر بهتر. شاهزاده گفت باشه همین کار رو میکنم و تمام روز رو اونجا پیش دختر موند تا اینکه غروب شد و شاهزاده خانم دوباره به یادش آورد که باید به دنبال کارهاش بره. پسر کارهایی رو که سرپیش خدمت گفته بود دقیقا انجام داد یعنی به جای مورد نظر رفت و چماق را برداشت و به سنگا زد. بعد کسی ظاهر شد که از چشما و بینیش آتیش زبونه می کشید. اون از شاهزاده پرسید چی میخوای؟ شاهزاده جواب داد من از طرف قول به اینجا آمدم. باید برای اون وسایلی ببرم. مرد آتیشی جواب داد چقدر میخوای ببری؟ پسر گفت هر چقدر که بتونم ببرم هر چی بیشتر بهتر. مردی که از سنگ ها بیرون اومده بود گفت یعنی اندازه یک اسب میبری؟ بیا داخل. پسر به داخل رفت. در داخل اونجا مقدار زیادی طلا و نقره وجود داشت. تلاها و نقره ها مثل سنگ در داخل کوه بودن. اون هرچی تونست از اونجا برداشت و افتاد عصر اون روز وقتی قول به خونه برگشت پسر مثل دو روز قبل در اتاقش مشغول آواز خوندم بود قول گفت آیا چیزهایی را که گفتم آوردی پسر گفت بله ارباب قول دوباره گفت اونا رو کجا گذاشتی پسر گفت کیسه تلاها اونجا روی نیمکته قول گفت میرم ببینم و رفت کیسه طلا روی نیمکت رو دید و اونقدر از طلا و نقره پر شده بود که تا قول رو باز کرد تله ها بیرون ریخت قول گفت تو صد درصد با سرپیش خدمت صحبت کردی. اگه این کارو کرده باشید سر تو جدا می کنم. شاخ گفت سرپیش خدمت؟ شما دیروز و روز قبلم درباره سرپیشخدمت خدمت با من حرف زدید. من خیلی دوست دارم که اونو ببینم. قول گفت تا فردا سب کن. خودم تو رو پیش اون می برم. پسر پادشاه گفت مشکرم ارباب. روز بعد قول شاهزاده رو پیش سرپیش خدمت برد. اون به سرپیش خدمت گفت تو باید اونو بکشی و در یکی از دیک ها بندازی. هر وقت قضا آماده شد منو صدا کن. بعد روی یکی از نیمکت دراز کشید. و به زودی خوابش برد و خورخورش بلند شد. صدای خورخورش مثل طوفان در بین تپه ها بلند بود. به این ترتیب سرپیش خدمت انگشت شاهزاده را کمی برید. سه قطره خون روی یه چارپایی چوبی ریخت. بعد لباس ها و کفش ها شده در آورد و توی دیگه انداخت. بعد صندوقی رو پر از تلا کرد و مقداری آب یک سیب و دو جوجه هم برداشت و با آخرین سرعتی که میتونستن با شاهزاده فرار کردند اونا بعد از اینکه کمی راه رفتن به دریا رسیدن و از اونجا سوار کشتی شدند قول بعد از اینکه مدت زیادی خوابیدش آروم آروم شروع کرد به کش و قس دادن خودش روی نیم کرد و گفت غذا حاضره اولین قطره خون روی چارپایه گفت الان حاضر میشه. قول یک قلطی زد و دوباره برای مدتی طولانی خوابید. و بعد از مدت زیادی از خواب بیدار شد و پرسید غذا حاضره؟ اما از اونجایی که نیمه خواب بود درست چشمش باز نکرده بود. دومین قطره خون گفت نیمه آماده است. قول که فکر کرد از سرپیش خدمت داره بهش جواب میده با خیال راحت روی نیمکت تکون خورد و دوباره خوابش برد. وقتی از خواب بیدار شد ساعتها گذشته بود. دوباره پرسید هنوز آماده نشده؟ قطره سوم خون گفت غذا آماده است. وقتی قول بلند شد نشست و چشماشو شمالید کسی رو ندید. سرپیش خدمت و صدا زد. ولی کسی جواب نداد. اول با خودش فکر کرد که آه اون حتما با اون پسرک فرار کرده. قاشقی برداشت تا بچشه و ببینه داخل دیگ چی هستش. اما در داخل دیگ چیزی به جز کفش و لباس و آشغال نبود. البته که اونها اونقدر توی دیگ جوشیده بودند که زیاد مشخص نبود که چه چیزایی در داخل دیگ قرار گرفته. قول با دیدن اون صحنه اونقدر عصبانی شد که خودشم نمیدونست چیکار کنه. اون به راه افتاد تا به دنبال سر خدمت رو شاهزاده بره. قول به سرعت باد حرکت میکرد و خیلی زود به آب رسید. اما نمیدونست که اونا کجا رفتن. با خودش گفت بسیار خوب. حالا منم تفل رودخونه رو صدا میزنم و اونو صدا زد. تفل رودخونه پیش قول اومد. سه جرعه از آب دریا رو مکید و در همون لحظه آب دریا اونقدر پایین اومد که اون تونست به راحتی سرپیش خدمت و شاهزاده رو روی دریا ببینه. سرپیش خدمت در همین وقت به شاهزاده گفت که تک بزرگ نمکی رو که همراه داشتن به آب بندازه و شاهزاده همین کار را انجام داد. به محض ریخته شدن نمک به آب دریا چنان کوهی از میون آبها بالا اومد که قول دیگه نمیتونست اونها رو ببینه و طفل رودخونم نمیتونست کاری بکنه قول گفت خب من برای این کار تو هم راه حلی دارم و بعد سوراخ کننده تپه رو خبر کرد تا تپه رو از میون برداره تا طفل رودخونهم بتونه دوباره آب دریا رو به مکه پیشخدمت خدمت به شاهزاده گفت که یک یا دو قطره از آبی رو که با خودشون همراه دارن به دریا بریزه به محض اینکه شاهزاده این کار رو انجام داد دریا دوباره پر از آب شد و قبل از اینکه طفل رودخونه چیزی از آب بمکه به مکه اونا به راحتی به خشکی رسیدند و تصمیم گرفتم پیش پدر شاهزاده برن. اما شاهزاده فکر کرد که شایسته اون و دختر پادشاه نیست. پای پیاده به اونجا برن. اون به دختر گفت کم اینجا منتظر بمون. من میرم و هفت اسب رو از استابل پدرم میارم. راه زیادی تا قصر پدرم نیست. من زود برمیگردم. نمیخوام که تو پیاده به قصر بیای. دختر گفت نرو اگه تو به قصر پدرت بری منو فراموش میکنی من مطمئنم شاهزاده گفت من چطور میتونم تو رو فراموش کنم ما یکدیگر خیلی دوست داریم و اصرار کرد که بره و کالسکه و اسب رو بیاره بالاخره شاهزاده رفت و شاهزاده خانم لب دریا منتظر او مون اون مجبور شد که خواسته شاهزاده رو بپذیره چونون برای رفتن خیلی مصمم بود. اما موقع رفتن دختر گفت وقتی به قصر رسیدی اصلا نباید معتل بشی و با کسی سلام احوال پرسی کنی. فقط یه راست به استبل برو بردار و زود برگرد. البته افراد به استقبال تو میان ولی تو باید طوری رفتار کنی که انگار اونا رو نمیشناسی. تو نباید چیزی در اونجا بخوری. وگرنه هم خودت و هم منو به دردسر میندازید شاهزادهم به اون قول داد و رفت وقتی شاهزاده به قصر رسید متوجه شد که عروسی یکی از برادراشه و افراد زیادی در قصر به دیدن عروس و داماد اومدن. بنابراین با ورودش به قصر همه به دورش جمع شدند اونا میخواستن بدونن که اون توی این مدت کجا بوده چی بر اون گذشته ولی شاهزاده طبق قولی که به دختر داده بود طوری وانمود کرد که انگار اصلا اونا رو نمیبینه اون یه راست به طرف استبل رفت اسبارو رو برداشت و میخواست برگرده دوستا و آشناهاش وقتی دیدن که شاهزاده به اونا اعتنا نمی‌کنه، رفتن و مقداری غذا و خوراکی خوب براش آوردن اما پسر از خوردن اون چیزای خوشمزه خودداری کرد و با عجله مشغول آماده کردن اسبا شد بالاخره خواهر عروس براش یه تیکه سیب آورد و گفت چون شما چیزی نخوردید و به نظر میرسه که بعد از این مسافرت طولانی گرسنه و گفتم شاید این یه تیکه سیب رو بخورید شاهزاده سیب و گرفت و گاز کوچیکی بهش زد اما وقتی سیب رو خورد به یاد دختر افتاد و سوار کالسکه شد تا دنبالش بره ولی با خودش گفت انگار من دیوونه شدم با این کالسکه و اسبا میخوام چکار کنم بعد اسبا رو به اسسب برگردوند و به قصل رفت مهمونا تصمیم گرفته بودند که شاهزاده با همون دختری که براش سیب برده ازدواج کنه. شاهزاده خانم مدت زیادی کنار دریا منتظر موند اما شاهزاده نیومد. بنابراین اون راه افتاد و رفت تا به کلبه‌ای در وسط جنگل رسید. اون وارد کلبه شد و پرسید که آیا میتونه اونجا بمونه؟ خونه متعلق به پیرمردی بدخلق بود. پیرمرد اول اجازه نداد که دختر پیشش بمونه ولی بعد از مدتی بالاخره دختر اونقدر اصرار کرد که تونست رضایت صاحب کلبه رو جلب کنه کلبه اونقدر کثیف و تاریک بود که دختر تصمیم گرفت کمی اونجا رو تمیز کنه تا به خونه آدمیزاد شبیه بشه پیرمرد زیاد دوست نداشت که خونش تمیز بشه ولی شاهزاده خانم توجهی نکرد اون مقداری تلا از صندوقش در آورد و در آتیش گذاشت تا ذب بشه بعد تلای زب شده رو در داخل و خارج خونه ریخ به طوری که تمام کلبه از طلا پوشیده شد وقتی تلاها داشتن سفت می شدن که از این کار دختر خیلی تحجب کرده بود خواست که از در بیرون بره که سرش به چارچوب در خورد و مرد روز بعد داروغه به اونجا اومد و از اینکه میدید خونه طلایی شده و برق میزنه خیلی تعجب کرد. وقتی داخل خونه رفت و دید که دختر زیبایی اونه بیشتر تعجب کرد. اون در همون لحظه به دختر علاقمن شد و ازش خواهش کرد که همسرش بشه. دختر گفت باشه، اما آیا تو پول زیاد داری؟ داروغه گفت بله من خیلی پول دارم و بعد به خونه خودش رفت تا پول بیاره حدودای عصر داروغه با دو تا کیسه بزرگ پر از پول برگشت و دختر قبول کرد که اون پول زیادی داره اونا نشستن و با هم صحبت کردن هنوز مدت زیادی از صحبت کردنشون با هم نگذشته بود که دختر با نگرانی پرسید ای بای فراموش کردم با آتیش سر بزنم. داروغه گفت چرا تو این کار رو باید بکنی من به آتیش سر میزنم. اون بلند شد و به طرف بخاری دیواری رفت. دختر گفت اگه بیلچه رو اونجا دیدی به من بگو. داروغه گفت بله بیلچه رو برداشتم. دختر گفت حالا که بیلچه رو به دست گرفتی باید تو روی خودت از اون زغال های سرخ شده بریزی. داروغه مجبور شد همونجا بیسته و با دست خودش روی خودش زغال گداخته بریزه. دختر نیرویی داشت که نمیشد از حرف اون سرپیچی کرد و هرچه داروغه خواهش کرد که اونو از دستورش سرف نظر کنه فایده ای نداشت. بلاخره داروغه تصمیم گرفت فرار کنه و همین کار رو هم کرد. و با سرعتی که میتونست از اونجا فرار کرد. هر کس که اونو میدید میستاد و بهش نگاه میکرد. چون داروغه با چنان سرعتی میدوید که انگاری دیوونه شده. همه با خودشون میگفتن این فرد چه کسیه و برای چهی فرار میکنه و از شدت شرمندگی نمیتونست برای کسی توضیح بده. روز بعد وکیل اومد در اطراف ای که دختر درمون بود کمی از سواری کنه. وکیلم از اینکه دید اون کلبه ای تلایی شده و میدرخشه بسیار تعجب کرد و وسوسه شد که ببینه داخل خونه چه خبره. وقتی به داخل رفت و دختر رو دید بیشتر از داروغه بهش علاقمند شد و شروع کرد به صحبت کردن با دختر. زده خانم همون سوالی رو که از داروغه پرسیده بود از اونم پرسید. وکیل گفت که پول خوبی داره و به خونه رفت تا پول‌ها رو بیاره و شب با کیسه بزرگی پر از پول برگشت و کنار دختر روی نیمکت نشست. زده خانم از اینکه اون پول آورده ابراز رضایت و خوشحالی کرد و کنار اون موند و شروع کرد به صحبت کردن. بعد از مدتی دختر گفت که فراموش کرده در رو کنه و باید بلند شد این کار انجام بده. وکیل گفت چرا تو این کار رو بکنی من برات در قفل میکنم می و بلند شد و به سمت در رفت. دختر گفت هر وقت دستت به گفت در رسید به من بگو. وکیل فریاد زد الان دستم به گفت در رسید. دختر گفت حالا تو به در میخوری؟ و در به تو و تا فردا صبح احتمالا جزو دیوارای خونه میشی اون شب وکیل چه رخصی داشت رقص وحشتناکی که نمیخواست یک بار دیگه اون رو تکرار کنه در یک لحظه اون به در می و در لحظه بعد در به اون می خورد اون شب نزدیک بود که وکیل بمیره او اول با داد و فریاد از دختر خواست که از این دستورش بگذره و بعد شروع به خواهش تمنا کرد ولی هیچ فایده ای نداشت و اون ماجرا تا صبح ادامه داشت. به محض اینکه در از حرکت ایستاد وکیل پا به فرار گذاشت و بعد از اون قضیه اونقدر ترسیده بود که حتی کیسه پولش رو هم براموش کرد و اون کیسه نزده دختر موند. هر کس که اون رو در خیابون میدید دید می و بهش خیره میشد چون اون با چنان سرعتی میدوید که انگاری دیوونه شده. روز سفون قاضی داشت از کنار اون کلبه میگذشت که متوجه زرندود بودن و تلا بودن اون کلبه شد. او با خودش فکر کرد که خوبه به داخل خونه بره تا ببینه چه کسی در اون زندگی میکنه به محض اینکه وارد خونه شد و اون دختر رو دید بیشتر از دو نفر قبلی بهش علاقمند شد شخصات بازم همون جوابی رو که به دو نفر قبلی داده بود به اون هم گفت و ازش پرسید که آیا پول زیادی داره یا نه خاضی گفت بله من مقداری پول دارم و فوری به خونه رفتش تا پول رو بیاره. قاضی حدودای عصر با کیسه بزرگتر و پرتر از کیسه وکیل برگشت. اون فکر کرد حالا دیگه میتونه جواب مثبت رو از دختر بگیره. اونا تازه کنار هم نشسته بودن و هنوز صحبت هاشون گل ننداخته بود که دختر گفت فراموش کرده که گوساله رو بیاره و باید بره و اونو بیاره و سر جاش بذاره. قاضی گفت نه تو لازم نیست این کار انجام بدی من این کارو می میکنم با اینکه اون خیلی چاق و سنگین بود اما با سرعت و چالاکی یک پسر بچه از جاش بلند شد دختر گفت هر وقت دستت به دوم گوساله رسید منو خبر کن قاضی فریاد زد الان دستم به دوم گوساله رسید دختر گفت حالا که دستت رو محکم به دوم گوساله رسوندی اونو نگهدار تا صبح همراه اون گوساله به همه جا کشیده میشید. به این ترتیب دست قاضی به دوم گوساله محکم چسبید و گساله با سرعت هرچه تمامتر بین دشت و کوه و تپه می دوید و هرچی قاضی فریاد میزد نه تنها فایده نداشت بلکه گساله تونترم می دویید. نزدیکا صبح قاضی تقریباً داشت می‌مرد اما از اینکه از دست گوساله خلاص شده بود خیلی خوشحال بود و اصلاً قید پولهاشو زد و ول و شروع کرد به قدم زدن برعکس وکیل و داروغه اون انقدر آروم راه می‌رفت که هر کسی بهش می‌رسید با تعجب می‌ و بهش خیره می‌شد روز بعد از جشن عروسی در کاخ پادشاه برادر بزرگتر و عروس و همینطور پسری که خدمت کار قول بود و خواهر عروس میخواستم برای مراسم ازدواج به کلیسا برن. اما همین که اونها در کالسکه نشستند و راه افتادند یکی از میله های کالسکه شکست و اونا هر چی سعی کردن نتونستن اون را بندازن. حتی از میله های هم استفاده کردند ولی فایده ای نداشت. هلاسه اونا مدت زیادی معطل شدن و نتونستن از قصر بیرون برن درد سر بزرگی درست شده بود بعد داروغه که باید برای رفتن به کلیسا همراه اونا باشه گفت در این نزدیکی دختری زندگی میکنه که بیلچه عجیبی داره اگه بتونید بیلچه اونو بگیرید فکر کنم با قدرت عجیبی که داره بتونه به شما کمک کنه به این ترتیب اونا قاصدی رو پیش اون دختر پرست دادن و ازش خواستن که بیلچهش رو برای مدتی به اونا قرض بده. قاصد بیلچه رو از دختر گرفت و آورد و مشکل میله کالسکی حل شد. اما دوباره به محض اینکه اونا سوار کالسکی شدند، انتهای پشت کالسکی شکست اونا فورا اونا تعمیر کردند، ولی دوباره شکست. انگاری مهم نبود که اونا از چه نوچوبی استفاده کنم و یا ته درشکه با چه دقتی ساخته شده باشه تا اون رو نصب می کردن فوراً می کس. این بار مشکل از دفعه قبلم بدتر شده بود وکیل که از موقع عروسی در قصر بود گفت در این نزدیکی دختری زندگی میکنه که دستگیره دری داره که جادوییه. اگه بتونید اون دستگیره رو ازش بگیرید احتمالاً می این مشکل رو حل کرد. دوباره قاصدی رو پیش دختر فرستادن و دستگیره دری رو که وکیل ازش تعریف کرده بود از دختر خواستن. بعد دستگیره رو آوردن و اون مشکلم حل شد. اما حالا اسفا دیگه قادر نبودن درشکر بکشن. اونا اسب به کالسکه بسته بودن و دوتای دیگه هم به اونها اضافه کردم که جمعا شد هشتا و بعد ده دوازده تا ولی اصلا فایده ای نداشت. اصلا کالسگرون نمیتونست با کمکی اون اصفا کالسگر حرکت بده. دیگه روز داشت به پایام میرسید و برای رفتن به کلیسا خیلی دیر میشد. همه افراد قصر ناراحت و نگران بودن. بعد قاضی به طرف اون آمد و گفت در این کلبه ای که در نزدیکی اینجاست یه دختری زندگی میکنه که یه گوساله داره. اون گوساله خیلی قویه. من فکر میکنم که میتونه کالسکر رو بکشه. اگه بتونید اون گوساله رو ازش بگیرید احتمالا این مشکل حل میشه. به نظر اونها خیلی مسخره بود که بخوان با گوساله به کلیسا برن. ولی خب چاره دیگه ای نداشتن و مجبور بودن برای بار سوم قاصدی رو پیش دخترک بفرستن و ازش بخوان که گساله ای رو که قاضی ازش تعریف کرده برای اونها بفرسته. دختر این بارم پذیرفت و اجازه داد که اونا گساله رو ببرم. گساله رو به کالسکه بستن تا ببینن میتونه اونو بکشه یا نه. به محض اینکه گوساله به کالسکه بسته شد با چنان سرعتی شروع به حرکت کرد که اونا لحظه‌ای روی زمین و لحظه‌ای روی هوا بودن. وقتی به کلیسا رسیدن کالسک با سرعت هرچه تمامتر شروع کرد بگشتن دور خودش. کالسک اونقدر تون دور خودش می‌چرخید که اونا اصلا نمیتونستن ازش شن. و خودشونم نفهمیدن که چطوری شد که سر کالسک برگشت و اونا به قصر رسیدن. وقتی به قصر رسیدن پسری که در خدمت قول بود به بقیه افراد گفتش که خوبه که دختری رو که بیلچه دسته در و گوساله رو ازش غرض گرفتید به قصر دعوت کنین. اون گفت بلاخره اگه کمکهای اون نبود ما نمیتونستیم از قصر بیرون بریم شاه هم نظر پسرش رو قبول کرد و چند نفر از بهترین افرادش رو به کلبه طلایی فرستاد تا اون دختر رو برای اشتران به قصر دعوت کنم. دختر جواب داد به شاه سلام برسونید و بگید اگه میخواد من رو ببینه و دعوتش رو قبول کنم میتونه خودش به دنبال من بیاد. بنابراین پادشاه مجبور شد که خودش به دنبال اون دختر بره و اونو به قصر بیاره. در همین موقع اون متوجه شد که اون یه دختر معمولی نیست. وقتی شاه به به قصرم یه خروس و مرگی رو که همراه خودش داشت روی میز گذاشت و سیب طلایی رو که از خونه قول همراه خودش آورده بود نزدیک اونا گذاشت مرغ و خروس روی سر سیب طلا شروع کردن به جنگیدن با هم دیگه پسر پادشاه گفت آه ببینید که این دو چجوری بر سر سیب تلایی با هم می جنگند دختر گفت بله زمانی که ما هم در کوهستان بودیم همینقدر برای حفظ زندگیمون جنگیدیم با گفتن این هر شاهزاده اونو شناخت و با دیدنش خیلی خوشحال شد شاهزاده دستور داد سیب طلا رو قتقته کنن و بین همه تقسیم کنن و بعدم یک جشن عروسی واقعی برای شاهزاده برگزار شد که همه با شادی و خوشحالی در اون شرکت کردن امیدوارم که از شنیدن داستانمون لذت برده باشین تا داستان بعدی منتظر ما باشید سفر به دنیای پر رمز و راز افثانه ها طبیعت های زیبا و نایاب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 سفر شاهزادهها و شاهان با اصف تندرو و جادویی به سرزمین های ناشناخته قصههای های دیو و غول و پری رشادت‌های های, های قصهها همه, همه, همه. همه و همه و همه در کانال تلگرامی هزار افسان داستان های ای صوتی ادساین مهران دوستی